سلام، به آفلاین خوش آمدید اینجا قراره تو چند بخش خبرایی رو مرور کنیم که باید بیشتر دیده بشن و بیشتر دربارهشون صحبت بشه شاید شما تو یه هفته بیشتر از هزار تا خبر مختلف ببینید و چند لحظه بععد فراموششون کنید ولی آفلاین درباره موضوعاتی که تا مدتها تو ذهن هر خانندهای باقی میمونه و نیاز به و تحلیل داره این اولین قسمت آفلاینه با ما همراه باشید قبل از هر چیز چشای مهم هفته یکم یاهو تایید کرد اطلاعات بیشتر از 9 میلیارد نفر از کاربرانش به سرقت رفته دوم با سرعت 550 کیلومتر در ساعت رکورد سرعت خودروهای الکتریکی شکسته شد سوم چین تایید کرد ایستگاه فضایی این کشور از کنترول خارج شده و سال آینده در نقطه نامعلوم سقوط میکنه چهارون. گوگل اپلیکیشن الو اولین برنامه پیام رسانی که از شبکه های عصبی استفاده میکنه را منتشر کرد پنجم، اپل به دلیل فرار مالیاتی در جا به پرداخت جریمه 118 میلیون دلاری محکوم شد حرف اول فقط چند روز کافی بود تا بعد از شروع فروش گوشی های جدید اپل در دنیا سرکله آیفون هفت آیفون هفت پلاس تو ایران هم پیدا بشه البته می از یه گفت این اتفاق اونقدر هم برد نیست ایران ارتباط شندانی با بازارهای بینال ملنی نداره و معمولا برای ورود یک کالا باید چند ماهی سبر کرد اما این داستان تو برچه تجهیزات دیجیتال مثل موبایل و لب و میشه خیلی سریع به روز محصولات دنیا رو تو بازارهای ایران هم پیدا کرد اما مشکل از اونجا شروع میشه که در واقع هیچ نظارتی روی ورود کالاها ها و بعد فروش اونها در کشور صورت نمیگره چند ماه پیش خبر راهندزی تره رجیستری تلفونهایی حوشمن مثل بمب صدا کرده بود و همه از غیر شدنن گوشی هایی میگفتن که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود اما هنوز جوهر خبرها خوش نشده و گوگل صفحه های مربوط رو ایندکس نکرده. می‌بینیم گوشی های ابل خیلی راحت میرن پشتگیتونه مغازه ها. در این که این گوشی ها قاچاقی وارد شدن که شکی نداری. ولی مشکل اصلی قاچاق بودن اینا نیست. مشکل اصلی قیمتی که براشون تعیین شده. گوشی آیفون 7 پلاس مدل 256 گیگابایتی جتس بلک قیمت ناقابل 8 میلیون تومان. بله. 8 میلیون تومان. قیمت این گوشی به دلار چقدره؟ حدود 900 دلار. فرض کنید هر دلاری بشه 3500 تومان. یعنی یه گوشی 3 میلیون و 200 هزار تومانی تو ایران داره 8 میلیون تومان فروخته میشه. این وسط تقریبا 5 میلیون تومان سود به واسطه میره. جالب اینجا سی مشخص شده سود ناخالص اپل برای هر گوشی چیزی حدود 500 دلاره که تازه باید هزینه های جانبی مثل کارگرها، انتقال، گارانتی، مالیات و چیزهای شبیه به این هم کم کرد اون مخواستی عزیزین مثلا چقدر سود میکنه؟ 1400 دلار 1400 دلار نزدیک 3 برابر سود خود اپل بعد از یک طرف میگن هر کسی این ها رو بخره چند ماه بعد که طرح رجیستری راه افتاد گوشیش غیر فعال میشه. بعد فروش همینو تکسیب میکنن میگن اگر هزینه اش پرداخت بشه غیر فعال نمیشه. بالاخره داستان چیه این وسط؟ غیر فعال میشه یا اگر پولش رو بدن غیر فعال نمیشه؟ واقعا این طرح رجیستری به جز اینکه گوشی‌های مورد نیاز افراده رو گران‌تر کرده، چه کار داشته؟ بعدش یه چیزی آقا چرا میخرین؟ هشت میلیون پول گوشی میدین که چی؟ همین گوشی فردا بیاد تو بازار پر بشه قیمتش میرسه به چهار میلیون واسه چه هشت میلیون میخرین؟ چی؟ پول خودتونه؟ هرجور خواستید خرجش میکنی؟ آهان باشه حله حرف آخر هفته پیش گوگل نرم پیامرسان پیام رو به صورت رسمی معرفی کرد البته این اپلیکیشن فعلا در مرحله آزمایشیه و احتمالا یه سری ایرادات یا ها توش به چشم میان. ولی شاید اصلی ترین سالی که برای یه کاربر ساده پیش بیاد اینه که با وجود برنامه های محبوبی مثل مسنجر فیسبوک واتس اپ و یا حتی تلگرام چه نیاز به برنامه پیام جدید داریم البته سال خوبیه ولی جواب ساده ای هم داره. بوگرد تو این برنامه از دستیار صوتی اختصاصی خودش استفاده کرده. شما میتونید به صورت متنی یا صوتی با این دستیار صحبت کنید و ازای سالت مختلف بپرسید. میتونید ازای سال کنید فردا هوا چطوره؟ درباره خبرهای روز بپرسید. ازش بخواید به کسی زنگ بزنه یا براتون یا آلارم تنظیم کنه. یا آدرس پارک ها و رستوران های اطراف را ازش بگیرید. حتی میتونید یه مکالمه ساده رو هاش شروع کنید و همونطور که با دوستاتون صحبت میکنید با دستیار صوتی گوگل هم صحبت کنید. حتی میتونید وسط حرف زدن با یکی از مخاطبینتون هم از دستیار گوگل درباره مواردی که موضوع بحث شماست اطلاعات بگیرید. چنین این ایده به شدت جالبه و به خاطر همینه که قبلا دستیارهای صوتی مثل سیری و کورتانا انقدر محبوب شدن. اما یه نکته نسبتا ترسناکم این وسط وجود داره. تاشر صوتی گوگل با تمرین بیشتر و سوال و جواب بیشتر آشنایی بیشتری با شما پیدا میکنه. علایقتون رو میشناسه و از که زندگیتون باخبر میشه و هر چقدر بیشتر باهاش کار کنید شناخت بیشتری از شخصت شما پیدا میکنه تا بتونه در آینده به سوالاتی که ازش میپرسید بر اساس نیازهای شخص خودتون جواب بده. این اتفاق در ناه خودش خیلی عالیه ولی همیشه باید یه درصدی هم برای اتفاقات ناخوشایند کنار گذاشت. اگر گوگل بخواد بعداً با جمع این اطلاعات از اونها بر علیه شما استفاده کنه چی؟ اگر بعداً به کمک همین چیزهایی که خود شما در اختیارش قرار دادیم با سیل تبلیغات گوگل روبرو بشین چطور؟ وقتی ای فراگیر میشه و در شدت زیادی از مردم جهان ازش استفاده میکنن بانک اطلاعاتی بسیار گسترده‌ای هم در اختیار گوگل قرار میگیره که به تدریج هوشمندتر و کاملتر بشه و همین اتفاقی که در آینده نزدیک گوگل رو به یک قول دست نیافتنی تبدیل میکنه البته شاید بهتر باشه به همه چیز بدبین نباشیم چه بخوایم چه نخوایم هوش مصنوعی در صد بسیار بزرگی از آینده بشر رو تشکیل میده و بهتر به جای فرار کردن ازش به فکر قانون من کردنش باشیم. زمان باور مانندت بی‌تابتم در شک که آسمان هم زمین این اولین برنامه آفلاین ممنون از اینکه با ما بودید نظرات، پیشنهادات، انتقادات، تشویق‌ها و بدویراه‌هاتون رو به گوش ما برسونید تا بتونیم به تدریج کامل‌تر و منسجم‌تر کار کنیم تا هفته دیگه آفلاین نشید. روز و روزگار خوش.